أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعسومين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشن وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمین هر برای قبل از ورود در بحث اصول عملیه بعضی از کلمات رو متعرض میشیم چون هم فی نفسه نفائده دارن هم در عین حال یک دوره ولو به نحوه تذکر برای احاسی است که در این موادس حجر بهش تعرض میشه تا اینجا مرحوم آزیا از کلمات مرحوم آزیا هست کردیم از تقریبات ایشان از نهایت الافکار پیشون فرموندن که امارات بر اصول حکومت دارن روی مبنای خودشون در حجیت امارات که تصمیم کش بود. کردن به این که تقریب کلام ایشان اما خب اده همین رو هم ورود می جونن. امارات رو پس این یکی که مشهورتر در بین اصولی ها بود تخصیص یکی هم حکومتی که من معاضی اینجا تقریب فرموندن یه تقریبا هم حکومت از حکومت به مجرد تعباز حالا فرض کنیم مثلا باید <تصفيق> کمی واضح‌تر بشه مثلا شک رو نرفی بکنه به مفاد لیسه تامه بگه شک نیست اما اگر بگه شکت شک نیست این به مفاد لیسه نابس هست حالوزی این لیسه نابسه و تامه تو لغت عرب استعمال نشده عرب لیسه تامه هست اینجا مراد معناش الله مراد کلمه لیسه نیست داخل بعضی اشعال کردن کلیسه تام من ند بعد در لغت عرب لیسه تام نیست لیسه در لغت عرب دائما ناقص است تام نادره اما مرادشون مفهوم معناز حالا مثلا لیسه نه لمیکن مثلا لمیکن زیتون یعنی لفظی که تام نداره الا یا ما این طور بگیم اگر جایی نفی شکه تعبد به نفی شکه این بشه حکومت اگر تعبد در نفی شک نیست تنزیل شک منظره یه حلو. شک و کلیسه بشه اینجا رو بگیم حکومت اون اولی رو بگیم ورود دومی خب برام اینجا هم مطرح شده این هم شان رو مرحوم رو مغازیانه بشتن. و بگیم اون دبایت میگه،, میگه شک نیست لیسل احد من مولی لایم بقی اون اصلا میگه شک نیست وقتی گفت شک نیست این به ورود بهتر میخوره اما وقتی شک و کلیسه بشه اون به حکومت میخوره بله بعد, بعد در همین صفحه 196 و تا نیمه های صفحه 197 ایشون وارد اون بحثی که اثر کردم در اینکه اگر ما قائل به جعل بدل بشیم نه قائله به تشمیم کش یعنی بگیم یا تنزیل معدام منزله واقع یا حالا جهر بدل یا بگیم حالا به تبیریشون تنزیل معدام ایشون وقتی میگن که یک کمی حکومت مشکل داره من دیگه عبارت دیروز ارسکر میمکنم چون از بحث خارجیشون قبول ندارن خود ما هم قبول ندارن بیخوب بحث های فرضی نکنم بعد در وسط های بحث میگه نه یک یک راهی ایشان رو همون مردنا درست میکنه برای حکومت آه مراجعه کنه مطلب سختی هم نیست نگارشون توانید مطالعه کنم بی خود وقت نگیریم در وقت بعد ایشان میگه نه این راه رو که بگیم اگه نریم فلا محیث منکون تقدیم ها به منات تخصیص لاغیر این نکته ایشان درسته یعنی یکی از نکاکی که به تخصیص شدن، اون کسانی هستن که قائل به جلب بدل یا تنظیر معدام یعنی به عبارس دیگر اون کسانی که قائل هستن که قیام اماره سبب یک تغییری میشه حالا یه حکمی قرار دادیم شالا تنظیر معدام میشه اسم اسمش هم شده. اگر این اینجور شد یه نقطه ایش نقطه تخصیصه یه مقدارم ایشون وارد این بحث شدن که در حقیقت این کماقی ظاهرش مشهور در اهل سنت همینه همین نکته است که ایشون اشاره فرمودن و به نحوه تخصیص گرفتن بله بعد در این پس از این نعم که در صفحه 197 تا مدود هفه سر ایشون به اصطلاح تقریب تخصیص کردن بعد میگه وقدیو قرر با تقدیمها علال اصول هین اعزم به مناقل ورود این مسلک ورود نه به مسلکی ایشون هم میشه ورود تصویر کرد به دعوا اون هم باز وارده بله بحث این جهد میشن که یه خدا آنچون چندان فایل زیادی در بحث ما نداره بعد. بله تأثیری نداره الان وارد این بحث نمیشه بعد بعد رد میکنم بحث وصول ورود رو رد میکنم بله یک نکته دیگری وجود داره که الله بعضی از نکاتی که ایشون در اونجا فرمودن در زیل بقیه بحث بعد از این بحث که از کردم حدود یک صفحش تقریب استدلال خود ایشان بود که حکومت بود بنابرای اینکه حجیت معنی تطریم کشف باشد بعد وارد بحث حجیت معنی تنظیر معدام تعبیر ایشون یا جعل بدن یا انشاء حکم ظاهری حالا هرچی مخید نسمشه بذاریم اون نقطه فنی رو همیشه در نظر بگیره اساس اون نقطه فنیست اون نقطه فنی چیه؟ اون نقطه فنی نستار یا خبر اگر قائم شد بر چیزی ها به تحبیرشون آیا این منشه یک جعل حکمی میشه؟ بدلی میشه؟ تنزیل معددان میشه؟ یا این طریق صرفه؟ چون طریق صرفه ایش تحقیل ایجاد نمیکنه. کنه من این صرف این که بعضی از معتزله یا غیرمعتظله منکر حجیت مثل خبر بودن حقیقت شما هم همین بود البته این بحث اونا در خبر گفتن در کتاب و اصول شیعه مطلق غیر علمی آوردن اخصاص به خبر ندارن بحثش این بود که ببینید خبر طریقیت داره یعنی مقدمات اینجوری بود همون شبه ابن قبه دیگه استدال ابن قبه خبر طریقیت داره این طریق هم گاهی به واقع نمیرسه این هم دو واقع هم هم مفاسد داره این مقدمه سه هم تحریف مسالح و التزام به مفاسد هم درست نیست این مقدمه چه هم پس دیگه با این حساب نمیشه جهل و جهل که چون شاره اگر بگه این طریق رو من قرار دادن میدونن قد یخته و واقع نمیرسه و من منچه میشه که واقع مسالح هست به این بره خب این خلاف غرض مولاست مفروض اینه که خبر طریقیت هست. لذا ما بعد از اینکه شبه ابن قبر مطرح کردیم ارز کردیم راه علاجی این شبه باید یکی از این مقدمات خراب بکنه یکی از این مقدمات مثلا بگیم مساله و مفاصله واقعی نیست این رو خراب بکنه یا مثلا بگیم خبر غیر از طریقیت یک تأثیری هم داره این همون بحثه تنظیر معداد تغییر. جل و در انشاء حکمی ظاهری پس دقت میکنید اون نکته فنی که مشهور علمای اهل سندن رفتن به حجیت خبر حالا الان تقدیر صحت نسبت چون در این مقدار در این بخش خبر یه مقداری من با مراجع که رو کلماتشون کردم خالی از نوعی استراب نیست این مطلب رو اینا در قیاس گفتن اشتراب در خبر نیست اون مطلب ابن قبه در خبره خوب درقصه بکنه اینجا صحبای شباه در کلمات اصحاب ما پیدا شد اصحاب مترخی خیال کردن کلام ابن قبه در زن مطلقه در اماره غیرهیمیه است هر کلم اینطور نیست ما در بحث زن توضیح دادیم و چطور اصولا مسائل در ذهن اصحاب ما یک جور دیگه خب سه باشم اینی که اصحاب ما کمتر به کتب و اص مقصد اون کتب اوائلشون و کتب مهمشون مراجعه کردن مسادر اولیه لذا منشه این اشتباهات شده پس نکته فنی این که ایشون میگه تنزیل معداد این که میگه جعل بدن این که میگه دقت میکنه این نکته فنیش اینه که بگیم خبر طریق صرف نیست نکته فنیه لذا شیخ هم قدس الله نفسی را از یه داد گفت خبر طریق صرف هست مصالح و مفاسد واقعی هست، گاهی هم خطا میده، مصالح فوت میشه، اینم هم هست. اما خود این جعل خبر، خود این جعل حجیت داره یک مصلحت اجتماعی است که میتونه اون مصلحت فائت رو تدارک بکنه. یه اسمش شد مصلحت روشن شد؟ یعنی اینها های متعددی مثلا مرموم ناینی در جواب مثل ابن قبرشی میگه, میگه بله خبر کاشف ناقصه لیکن چون حجیت ما داریم و حجیت تابع کاشف تامه تعبوت میاد میگه کاشف ناقص تامه این هم جواب مرموم ناینی مثلا پس ببینید دقت مکنید ما این مسائل رو در محل خودش کاملا توضیح دادیم و مبانی رو هم روشن پس مرموم آغازی ها رو مبنای تنزیل ما ازدار ببینید مراد تنظیر معددانیست مراد اون نکته اصاسی اینه مبانی کسانی که خبر و اماره رو طریق صرف نمی دانن مثلا ارز کردن. کلمات اهل ابن قیم در مطلق اماره نیست آه. در خصوص خبر ولی که اصحاب بالا ولی که مسلمه که در بعض جا تریق صرف نیست مثل قول قاضی قول قاضی تریق صرف نیست این برای وقت خسومت تو جامعه است مثلا خبر نیست اون تو جامعه خصومت نباید باشه. اگر بنا شد که مغرید بشه به حصول علم، جامعه به هم می‌خوره. قاضی حکم می‌کنه این طرف میگه آقا برام این پیدا شد، میگم قاضی دیگه. باز نه، اون طرف میگه این پیدا نشده، باز قاضی دیگه. باز نه، پیدن... خب این به هم می‌خوره، جامعه به هم می‌خوره. درک فرمودین؟ مثل قول داور الان در همین مسابقاتی که هست، گویی با اینکه بر تعهیم کردن غلط گفته، حکم رو نافذ می‌ذاره. این یه قاعده است. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک این موضوعیت بشه. اون اختلاف ما هم با آقایان در اینجا بود ما اصولا شده که حجیت حتی در اونی که طریق سرکه با قول کاشف تامنه اون هم تابع موضوعیته که همون مسئلت اجتماعی باشه توضیحاتش گذشت دیگه تکرارش کمی قصد کنند بعد از این مطلب بعد از این که نسبت بین امارات و اصول رو مرمومه آیه موازی ما تعرض شدن صم نهوب بمذاکرنا فی بچه دیگه اون بسطیشو نخوندیم وقتی در اون یا هم ایشون سه تغییر کردن یک تغییر به حکومت یک تقریر تخصیص یک تقریر ورود ما از اون بحث نمونیم در اصل بشه مطرح بکنیم چون اون رو قبول نکردیم که هم چیزی باشه تنزیل موعدا جلب و زدن رو قبول نکردیم بحثه فرضیه من که خوجان نمیگم صم منهو بمذاکرنا في وجه تقدیم الامارات على اصول یه و وجه تقدیم الاصول علا بعض ال آخر که اصول تنزیریه به نسبت الى غیرها و این تقدیم علا نهبل حکومه همین بحث هم در اصول تنزیلی هست و غیر تنزیلی البته ایشون تنزیلی بر غیر تنزیلی نوشتن ما این توضیحات رو ارز کردیم در خود اصول تنزیلی هم بعضی های قدم هر از این طور نیست که باید تنزیلی باید تنزیلی حالا تق... تعبیر با اصول محرز تعبیر با اصول تنزیلی ما معیارش رو در دی وحث گذشته از مرحوم ناینی نقل کردیم در خیلی 3-4 روزه بخواییم نقل بکنیم بکنی. از سرم این مطلب رو من سماهن از مرحوم های بجنودی شنیدم که ایشون از قول ناینی نقل میفرمدن و نه در تغییرات ناینی آمده و نه در کلمات خود مرحوم های بجنوردی یه صورت تقریبا ناقصش در مثبال اصول مرحوم استاد هست این تقریبی رو که ایشون دارن تقریبا واضح میکنه چون ایشون بوده اگه قطع پیدا بشه چهار نقطه پیدا میشه یکی صفتیتی که کاشفیت از واقع یکی انکشاف الواقع به هی که هم جریع عملی در امارات معتبر ست است سفت نیست کاشفیت هست، انکشاف الواقع هست و جلی در اصول تنزیلی دو تا است انکشاف الواقع هست و جلی در اصول غیت تنزیلی فقط جلی عمانی این یه تقریب بود که از مربون نایین وقت این نشون میده سر توبیم اصول تنزیلی رو عصودا در اصول تنزیلی، در به اصول تنزیلی فقط جلی عمانی صرفه در اصول تنزیلی نه تصرف میکنه و این را از خود لسان دلیل هم در میریم مثلا امام میتونیم لا تنفه نکه کن تا الان یقین من وضوعه یقین رو به لحاظ اینکه که برای تو که اول واضح بود نمیگه تو الان یقین داری به وضوع میگه اول یقین به وضوع داشتی اون یقین اول منشأ میشه که شما شکر کنیم تاکنم همون رو میخواد شارع توسعه بده حالا مفادلات این غزلیان این به شک چیه من ان بعد عرض میکنم اصلا حقیقت استصحاب چیه مثلا چه واقعیتی داره و چرا اینکه هم قدمای اصحاب هم دیگران تعابیر مختلف در استصحاب دارن آیا همون طوریه که مثلا ایده گفتن این قبیل ضرب شال اسم معنا یکیه یا نه اصلا معنا و حقیقت استصحاب بین اینا فرق میکرد اون کسی که میگه معنای استصحاب بقاء ماکانه یک جور استصحاب رو معنا میکنه یک بغایت خاص داره برای استصحاب اون که میگه عدم نقض یقین به شک به تعبیر علامه قزوینی همین باشه دیگری از استصحاب اینا توضیحاتش این شد جای خودش پس در اصول تنزیلی به تعبیر ایشان به تعبیر مرحوم ناینی نکتهش اینه که انكشاف الواقع ولو ما کاشف نداریم پس اصول تنزیلی چی کار میکنه میاد سر واقع سر موضوع در اصول غیر تنزیلی میاد سر جریان عملی این نکته فنی کاره و ما در بحثه همی هم توضیح دادیم سابقه هم توضیح دادیم از کردیم اصول عملی چون فرضش جهله در ظرف جهل میاد لحاظ یکی از رو میتونه بکنه خب در چون بعد ایشون محاله ای بگه با این تقریبا ما اول ترجمه بشه بعد معلوم بشه که اشار در کلمات کجاست ببینید ما یک مثال بزنیم گفتیم حتی ممکن است در یک قضیه واحده لحاظ‌های متعدد بیاد این یک نکته بسیار فنی و لطیفی است که در اینجا واجوش با کار باشه مثلا همین مثالی که چندی پیش عرض کردم همین مثلا شما یک گوشی از بازار خریدین این خونه از امام میسید چرا که من گوش خریدم خب ممکن است امام بگه بخور اگر امام فندم بخور این اصطلاح هم بهش میگیم اصل غیر تنسیب یعنی فقط جری جریان عمل چیزی نگفتن نکته رو توضیح ندادن حال گوش رو نکردن فرمودن بخور در این نکته از نظر تحلیل قانونی اینه در اینجا در حالت لحاظ شک امام نیامده حالت قبل از الان شما رو نگاه بکنه نه سلبن نه, نه ایجابن او بیا در حقیقت شما رو با این گوش در الان نگاه میکنه در این حالت اگر در این حالت نگاه کرد میفرمد بخور یا میفرمد نخور اگر بخور بود به ساعت الحل و برایت اگر نخور احتیاط یه دفعه دیگه امام ممکن است بگه که شما میگه این گوشت رو از مسلمان نگرفتید ببینید نمیاد حالت شما رو الان نگاه بکنه میاد اون حالتی که شما گوشت از دست مسلمان تحلیل گرفتی دقیق و ولذا اگر شما این گوشت از تو بیابون رو اوردی دیگه اون حالت لحاظ نگرده امام خب دقیق من شما این گوشت از مسلمان نگرفتی ولذا بنای اصحابم بر همینه که اگر شما از دست قصدار مسلمان گرفتی حکم به تسکیه میکنه همین گوشت تو بیابون پیدا کرد یعنی با تغییر لحاظ مطلب عوض میشه میگه می, می, گه می گه از دست مسلمان نگرفتی اگر اینجور گفت یعنی آمده شک رو با این لحاظ با لحاظ اینکه گوش از دست مسلمان آمده که قاعده سوق مسلم این اگر شد این معناشی ای است که امام لحاظ سوق کرده لحاظ دست مسلمان کرده و حکم کرده به اینکه این گوش مذکاست فقط, بخوره. فقط بخور تنها نیست در صورت سابق فقط گفت بخور حالا توش بخور هست خیل و فروش هست معامله هست ما نریت صلاحات نیست تمام آثار و مذکار در این بار میشه در همین مثال صورت سبا چی؟ <تصفح> خب وقتی آمد گفت مذکار شده دیگه همین دیگه, هم دیگه. این هم همینه که آن حکومت فهمیده چه دیگه میگه شما مزکاست معلوم نیست نه اگر اکی کنیم گفت لاتر کن همین تمام نکته فنی که تمام نکته فنی که اینا میخواد بگن همینه فرق از بین جایی که جریع عملی باشه و فرق از بین جایی که بیاد برای شما تنقیه موضوع بکنه وقتی میگه این مزکاست این جمعی آثار مزکا باعر میشه سبون. ممکن از امام این طور بفرمه بگه میگن شما وقتی که این حیوان سربرید حاضر بودی بوده قطع کنه یعنی امام آمده حالت زنده بودن حیوان که تسکیه برش واقع نشده نگاه کردن در حقیقت داره میگن شک میکنی تسکیه شده یا نه اصل عدم تسکیه است. اصلت و عدم تسکیه مناش چیه؟ مناش که این گوش میترست حالا البته آی خویی این رو مصبت میدونن اگر حکم بر عنوان میته باشه مثلا ایشون قاعدن که نجاست بر عنوان میته هلی حرمت عک بر عنوان غیر مزکا و از شک شد ایشون مثلا مثلا این در بزارت هست مثلا مرمی که در بزارتی شک شد ایشون میفرماین اسالتر در تذکیه حرمت عک رو اصفات میکنه اما نجا... نجاست رو اصفات میکنن. بحثی که آقای خوی مخالف مشهوره این نقطه شمینه اون نقطه فنی در کلامه اینه که نجاست میگه ایشون در روایت رفته روی عنوان میته اما حرمت عقل الا ماذکیتون در قرآن رفته روی غیر مذکار این دوتا با هم فهم میکنن شما میتونین اصالت عدم تسریه جاری کنی؟ لكن با اسات عدم تسریه اون وقت ثابت نمیشه تون. مثبت نمیشه اون آیون یا مشهور علماء البته احتمالا شیدسانی هم که در شرح لومه مطلبی داره که اگر یکی حیوانی مطالد از حیوان این بود و تا به اسم اونها نبود و تا به حیوان سالسی هم نبود یه کم و به حرمت اکله و تهارت لحمه عملا بلعص رفیه ما در عباس شیلستان در شرح لومه عملاً بلعص ما ایشون زارش آره خوی با ایشون موافقه خلافن دل با شیلستانی داکن من فکر میکنم شیعه راه دیگه رفته باشه حالا نمیخوام بار دوم ابراز شیعه باشه مطلبش چیز دیگهای باشه بله اما آیخویی راهی که آیخویی رفتن بعد تنقیه و غلظت خب بین زمان شیعه تا آیخویی فر زیاد اصول خیلی لشکرنشیا ولحمانی شیه معمولا آیخویی راهشون اینه که با درسته شما با اساس آن توصیه اسوات میکنی مذکر لکن اساس آن توصیه اسوات میکنه حرمت رو نجاست و عنوان میتزه اگر با اساسات علم تصدیق بکنیم میگیم میتزه اصل مصرف دقیق فرمودید ایشون مصلحه اون نقطه کار روشنشون. اینی که اپ خویش بریم میکنن بعضی که اگر مثلا اون گوشه مشکوک توی آب گوش درست یعنی آبش میشه خول اما خود گوشش نمیشه خود و پاکه تفقیق ما بین طهارت و حرمت رو اون نقطه ایشان اینه چون ایشون عنوانه به اصطلاح نجاست رو رو میته میدونن نه رو غیر مزکا حرمت لحن رو غیر مزکا میدونن میگم به لسان در این طور و از غیر مزکا بودن اثبات میته بودن نمیشه کرد اله بالاصل مسلم. حالا برای این بحث ما اشاره کردیم تو بحث استثاب تو بحث استثاب نه تو بحث اساطل برای و اساطل شغال. چون مرحوم شیخ اونجا در رسائل متعرض اساسات علم تسبیح شده ان ما اونجا خواهیم گفت چون اساسات علم تسبیح که ابتدائاً اصحاب میگفتن بعدی ها مثل جواهر و دیگران خیلی مفصل رو اساسات علم تسبیح بحث شده مثل وحوم ناینی چند صورت کرد در اساسه ان شاء الله تفصیل بحثش اونجا اشاری اشاره می‌کنیم تفصیل در مباحث اونجا کیف ما کن پس دقت بکنید صحبت اینه اگر اون حالت لحاظ کرد معناش غیر مذکره بل از من دار من عرض کردم اینو خوب دقت بکنید در باب و اصول اون کیفیت لحاظ اساس کاره در باب و اصول شک ماه و شک زنه میشه شک رو میاد از یک زاویه خاص نگاه میکنیم. شک نگاه میکنیم که گوش در مقابل شماست دیگه این ما تفسیری که بدیم میگیم اصل غیبت اگر آمد گفت قابل دست مسلمان گرفتیم این رو تفسیر میکنیم اصل تنزیلیه که این نتیجهش مزکا بودن اگر گفت میگه شما در لحظه تسکیه در لحظه زبه ایوان حاضر بودی این معناش این است که اصالت عدم تسکیه و این هم اصل تنزیلیه چون حالت سابقه رو آمده اون حالت حاضر شبیه این حالت شبیه این مطلب در باق قاید تجاوز هم هست شما در نماز هستید من مثالش اخیراً عرض کردم در سجده شک میکنید که رکوع کردی یا نه دقیقاً همین سه حالت تصویر میشه خود دقت میکنه و همینطور تو نماز دو تاشو داریم سه تاشو یه دفعه امام میگه آ من شک کردم در سجده امام میگه این ام دو چی فرید امام بده برو. اگر گفت این دو سالات صلاته چی تعبیر میکنیم میگیم این اصل تنزیلی غیر تنزیلی یعنی این نمیاد حالت رو نگاه بکنه فقط وظیفه عملی بر شما میاد هیچ رو برای شما احراز نمیکنه اینو میگن اصل غیر تنظیری در روایت داره که امام میگه بلا قدرکرد این بلا قدرکرد میشه اصل تنظیری یعنی اون رکوعی که مشکوکه حالا تقریبش هم اخیراً گفتیم ان شاء در تجاوز عرض میکنه امام میاد میگه به اصطلاح به عبارت دیگه شما قرائتی دی که انجام دادیه. الان الانم که در سجده هستی در حال نماز هم هستی این که میدونی شرطه پس این رکبه انجام بلا قدرکه هست حالا که در سجده رسیدی پس بگو من رکبه انجام بزن به سجده رسید این بلا قدرکه که اسمش قاعده تجاوزه این معناش معنی اصل تنظیهیه خب الله امام که دروق نمیتونه بلا قدرکه قسم معلومی سید و به قسمتونه نکردم شد لازمه شو میشونه بگیم بلا؟ لازمه میشونه امزه فی سلاته؟ امزه یا اغزه؟ اغزه فی, فی, فی سلاته اغزه فی سلاته نیانی اغزه سلاته نیان قضا مورایی چون؟ با... یعنی شما ادامه بده امزه فی سلاته این در... نه. ببین ببینی اگه فی سلاته یعنی همون اصلا غیر تنظیم اون لازمه بلا قدر نه نه ها... در قصول لازمه رو حساب نمی کنی نه اشکار کار همینجا هست اینجا عمور تک چرا نه این تعبیر نیست من همین رو بگم این نحوه اعتباره ولزا شاید شما دیروز سشن داشتین یاد ما این مباحثی که اینجا الان مطرح میکنیم ون و الان عزاویه استنباد در روایات و احکام شریع باکه این راهی که ما می‌گیم اوغلایی هم هست به لعبی کسی که در پارلمان می‌خواد هر قانون جهل بکنه قواعد به درد نمی‌خوره ما میتونیم حالات مختلف لحاظ بکنیم من میخوام این بحث بگم کار به تعبد نذارید هر حالتی یک حکم خاص خودش داره اگر گفتیم امزفی سلاته کار نداریم که تو رو انجام داریم کار نداریم که که انجام داریم نداریم برو نواز دقت کن امزفی سلاته این ما چی اسمشی میزنیم اصلا غیر تنزیلی معیار در اصلا غیر تنزیلی این از که چی؟ وظیفه عملی وظیفه عملی صرف اما یه دفعه میگه بلا قدرکه است این بلا قدرکت یک تصرفه یک ابداعه چون اخبار که نیست مطابقه چون مونگه واقع نبوچه حالا البته ما انز کردیم این ابداع منشع میخواد منشأش چیه؟ تو قراعت انجام دادی تو در حال نمازی میدونی که بعد از قراعت و قبل از سجود باید رکوع باشه الانم در رکوعی بیانی این مجموعه در نظر میگیره ابداع میکنه بلا قدرکت تو رو انجام کردی؟ این رو بشونی اصل تنزیلی، اصل تنزیلی اینه که وظیفه هم طبعا وقتی بلاغذر کرد نمازو تمام بکن معلوم رو بلاغذر کرد لیکن وظیفه صرف نیست میاد برای شما تنظیل میکن در همین مثال دو, دو ما حالت سوام هم فرض میشه کرد مثلا امام میگه آمون شکر کردم در سجده امام میگه تو بعد از قرارت میدونی رو انجام بده؟ بیدونی؟ را حالت قبل از رکوع ممکنه بره رفت رو حالت قبل از رکوع قبل از رکوع قرائت بود تا رفت رو حالت قبل از رکوع یعنی می‌فهمی استصحاب کرده <تصفيق> یعنی می‌فهمی استصحاب عدم رکوع کرده این یک بحثی بسیار ظریف و لطیفی است از شولا بین مقدار از ظرافت در کلام ترتیب بزرگان ما هم این این چیه اینم اصل تنزیلی است چرا؟ چون نتیجه این اصل تنزیلی اصلا رو کوه پس این در یک مثال واحد سه تا اصل میشه تصویر کرد یک اصل غیرتنزیگی فی سلاته یک اصل تنزیلی خلاف حالت سابقه بلا قدر کرد یک اصل تنزیلی طبق حالت سابقه این به چی برگشت برگشتش به چی؟ بلا؟ نا به نظر چه اصلیو میطلبه چرا در همینضیه واحده هر کدوم قابل لحاظه ممکنه همین ممکن خب به ممکن اصل تنظیری اصلی بشه تخییات لوازم باشه نه نیستم چیز قابل لحاظه اصلا حتما میخوام همینو بگم همینی که گفت انزفی صلاتک ناظر نیست که تو رو کو انجام دادی انجام دادی بورو نمازتونو بکن درک شد انزفی صلاتک غیر از بلاغت ورکزه ولو بلا قدره کرد معناشی که نماز اعدام بده معناش همینه اما دو جور تعبیره اون وقت اون نکته فنی که به آیان آمده اینه یک چرا اصل تنزیلی بر غیر تنزیلی مقدمه دو چرا بعضی از اصول تنزیلی بر بعضی اصول تنزیلی مقدمه مثلا اصل تنزیلی مشهور مشروع عدم تسکیه است چرا قاعده سوق مسلم و یاد مسلم بر اساتید عدم تسکیه مقدم؟ خب در مس قاعده فراغ جا استصحاب خود در مثل قاعده تجاوز یا فرا حالا یا دو تا تئوری هست یکی سیه، یکی, یکی, یکی برمیگرده که اینشا در محل خودش عرض میکنیم در اونجا شما در مس قاعده تجاوز استصحاب جاری میشه چرا شما قاعده تجاوز جاری می‌کنه استصحاب نمیشه این هم بین آقایان بحث شده اومسانو نگاه کنید باز ایشون میگن حکومت از کردم شاید در عبارات اکثر قدما تخصیصه بعضی از این معاصرند در کتاباش اگه من اشتباه نفهمیده باشم ایشون هم قائل به تخصیصه مخصه تخصیص اینه لا تن قزل یقین به شک ببینید این مال استصحاب این دلیلی میاد تشککلیسه بشه میگه شک نیست این که میگه شک و کلیسه بشه اون شک لا تنبازل به شک شرح میده یعنی شما اگر حالت سابقه داشته اینطور توبقه حالت سابقه برید به شکتون اعتناد نکنید مگر این که مگر این که جایی که خود شارع گفته شک دیگه تو نداری من گفتم تو رو کو انجام دیگه شک نداری شک نداری پس جای رو جو به استصاب مید فشک و کلیسه در مقابل اینها ادعه قاعده نه فشک و کلیسه بشه تخصیص از یقین یعنی اگر حالت سابقه بود تبقه حالت سابقه برو مگر موارد قاعده تجاوز مثلا دیگه نرو طبق اون شک نرو یعنی نکته اینه که فرق بین شک و کلیسه بشه فرقه من کرد نسبت به این شک و کلیسه بشه با لاتنگوزل یقینه به شک چیه مرحوم آزیا میفهمم به ما ذکرنا فی وجه تقديم العمارات على الاصول یظهر و, و تقدیم الاصول بعضا على بعض الاخر اصول تنزیلیه به نسبت علاقه ای را خب ما الان تغییر از نوعی از کردیم اصول تنزیلیشون میگه توش انکشاف هست اما اصول غیر تنزیلی جری عمله که این کشف باشه مقدم بر جری عمله و نه الان نحو حکومت فإنه من جهته اقتضاء اصول تنزیلیه لسبوت الواقع فی موارده ها توجه و خروج ها ان موضوع ماعده ها من الاصول المهزه مثلا اگر آمد گفت که لا تنوازه یقینه به شک بعد آمد از اون گفت حدیث رفت این روشون بین حدیث رفت که به استعمال برای اصل مثال زده مثلا اگر گفت شما شک میکنیم مثلا من با مثال این آبی که ده تا کره هست و سلی خون نجست شده قرمز شده خونی رنگش رفته سفید شده آیا پاکه یا نه استثاب میگه نجسته سابقه نجسته, نجسته رفع مالای علمون میگه نه شما که نمیدونی اصافت برای جاره میشه اصافت تاره میشه کلش این لکه نقیف اصافت تاره جاره میشه خب اینا محوم اینطور میگه یه حدیث رفع عنوانش مالای علمونه وقتی که آمد گفت ش... یقین رو به شک یعنی به شک اعتماد نکن یقین این مولاایمون برداشت میشه یا کل شیء نزیک به مورد شک ما اکثر این نکته رو عرض بود چون بعدم آزیات تو امر داره ما این توضیح رو عرض میکنیم اصولا این به طور کلی قاعده کلی ما در باب اصول ظاهری و قواعد ظاهری ب... نمیخواد در لحظه باشه البته در لحظه هست قوائد ظاهری همیشه محدوداً به علم به خلاف این در لب قانونی شد و لذا ما ارز کردیم برای اینکه یک حکم رو بدون این است یا یک حکم است اون راهش اینه که اون غایت رو نگاه بکنی اگر غایت علم به خلاف اون میشه ظاهری اگر غایت یک امر واقعی بود میشه علم حکم واقعی این فرق نقطه لطیفیه مثلا کلوشه این نظیف حتی تعلمان نهو قدرون این میشه چون ظاهری چون تعلمان کلوشه این مطلق حتی یره دفیه امرو اینجا ورود امر آمن نگو حتی تعلمان بله امر پس این کلوشه این مطلق میشه مثل قاعده هل یعنی هر چیزی در واقع مطلقه تا شاره نهی بکنه ازش نگفت حتی تعلم ولی ازای انشاءالله انسان این که تو بحثتون بعدم مقدمات های ایشون تو به مناسبت براعت کلوشه این مطلق شیخ هم شما عورده کلوشه این مطلق کلوشه این مطلق حتی هدفی نحیان دارت وقت نمیکنه نمی کنه چون براعت مقیده به علم به خلافه مثلا رفع انقام مثل مالای علمه عنوان مالای علمه ببینید این از این قاعدهی که من خدمتونه از کدم این خیلی نافه اگر آمد یک قاعدهی آمد که علم بود میشه حکم ظاهری اگر غایتی آمد که علم نبود، یک امر واقعی بود، خود اون مُغَیّام امر واقعی است. کُل شیء مطلح تا اردفیه نهیون، یعنی هر شیء در واقع حلاله. مطلب در اینجا یعنی شما محدود نیستید، قیدی بر شما نیست. و یا равно قیدو اسلام و اعلالاتی که بر علیه. پس ایشون می‌فرمایند مثل حدیث رد و دلیل حج، حدیث رد که واضحه. حالا دلیل نمیشه و مثلا شوال حدیث هم باید میره حج و ما حجب الله انر و نحوه ما منماله سله و نظران الى ثبوت الواقع نه قدیق اشغال فی تقدیم این تا اینجا اصول تنزیلی و غیر تنزیلی با اون تحبیراتی هم که ما گفتیم خیلی واضح شد چون در اصول غیر تنزیلی اصلا نظر به چی نمی کنه فقط نظر میکنه به جریه عملی یعنی ما تفسیری که گردیم اون خیلی حقوقی تر و قانونی تره. میگه امضادی سراته به چی چه نگاه نکرده در اصول تنزیلی چون نگاه میکنه خواهی نخواهی اون آثار بعدی رو هم شامل میشه. اگر در اصل تنظلی آمد گفت که مگه تو در قراعت نبودی یعنی استصحاب ها و, و کو یعنی بعد نماز ن دومتر عاده بود مثل در وجود در باب وضو میگه دارم چپ من میشورم شک میکنم صورتش شستم الان میگه دوباره باید بشوشه ولی ازا در باب وضو قاعده تجاوج جاری نمیشه این مصداق در باب اگر انسان در اثناء عمل شک کرد در یک عضو سابق با عادی بکنه این معناش همونه یعنی شاول تنزیه نکرده رفته حالت قبل از خسر وجه حساب کرده وقتی میگه یکس لو وجه تحلیل نقطه شوشه شد پس اگر آمد حالت سابق رو نگاه کرد گفت مثلا اسات عدم رکو خب طبیعتا لای همزی فی سلاته یا اگر آمد حالت رکوع حساب کرد و اون نتیجه شی همزی فی لکن این مقدم یعنی با آمدن بلا قدرکت دیگه احتیاج داره باید همزی فی سلاته اگر از الان نقطه دیگری باشه به الان از ذر ترتیب کار به این صورتی است که ما من مخوام هی آشنا بشین نواشوش با اصول عملی به کیفیت و اصول عملی که اصلا اصول عملی چی جوریه بعد ایشون میگه نه، قدیه قول اشکال فی تقدیم بعض اصول تنزیلیه علال بعض الاخر کل استثام به نسبت الى قاعده تاره بلقاعده هلیه ای زن الفی وجن قویه البته اینکه ایشون که قاعده هلیه من یه توضیح چون در عمر ثانیه ایشون یه بحثی داره من این توضیح اونجا خواهم داد که این فی برژن قبیین روشن بشه فی اینها علا مایز هرامون الاسحاب تکونو من الاصول تنزیلیه المسبتت لطهارت الواقعیه للمشگوکی ولی دالکه یورکتبون علیها ال آثارت تهارت الواقعیه فی ظرف شک من جواز توزی بهی و جواز دخول این راجه به قاعده تهارت اینو میگه در قاعده تارت هم اصل تنزیلی است معالک شارع مقدس چرا مثلا استصحاب بر قاعده طهارت که اصل تنزیلیش مقدم فئنها علامای قاعده طهارت علامای ازن عصاب تکونون در اصول تنزیلیه المسففۃ لطهارت الواقعیۃ للمشهور و لذالکی یترتبون علیها آثار تارت الواقعیه فی ذرف شد من جواز توذی بهیم و جواز دخول معروف صلاح و نحر ظاله البته ما ترجم کنیم چون به هم آزی همون تنبیه نفرموند و از اون مهمتر اجزا در قاعده تاره از اینو مهمتر که اگر انجام داد عمل درسته این خیلی مهمه این از اوش مهمترش این قسمت این قسمت اجزای ایشون میگه از عبارات اصحاب اینطور طور معلوم میشه که قاعده تاره وقت ما توضیحش ارز کردیم تنزیلی بودنش به لحاظ توسعه ای است که در لسان دلیل لا ساتلا به طهور میده به طهور عفوا معذرت لا به طهور حالا چون این بحث گذشت صابرن هم چندش هم تکرار کردیم حالا ایشون از اساس طهارت وارد شده ما برای اینکه مثال روشن تر باشه قاعده تجاوز و استصحاب چرا قاعده تجاوز و استصحاب مقدمه هردام اصل تنزیه یا قاعده ی بر اصعات عدم تسکیه سوح مسلم بر اصعات عدم تسکیه و هر دام اصد تنزیه اگر چیز بشه هر دوشی از این جدید و این نمه امدتال اشعال ان نماهو علا مبنه رجوع تنزیه در لا تنقذ لا تنقذ لا بقائل متعقن لا بقا یقین و لا فعلستانی که ما حوال اخت... مختار علا ما لا اشتال فی تقدیم الاستصحاب على قاعدت المزبوره به مناطل حکومه کرد اماران ببینید دقیق کنید مطلبی که ایشون فرموند چون قبل از وقت راستن هست مطلبیشون درسته چون در باب استثاب نقطه اینه که آیا رجوع تنظیر در لا تنقض بقای متعقن مرادش یا بقای یقینه البته مرموم آرزی ها به دیگران از راه های دیگری رفتن ما انشاءالله عرض خواهیم کرد از راه دیگری میریم و حالا ممکن نتیجه یکی باشه ببینید این بحث رو بعد عرض هایم کرد که های حقیقت استصحاب اعبقا ما یا بقا ما یا حقیقت استصحاب توسعه یقینه و این دو تا با هم دیگه فرق میکنم انصافش ارتکازات و عرفی ما ارتکازات و عرفی ما مسائل با دومه که آزی هم عقید شمینه ما مساعده با این ما این شالا از خواهیم کنید که حقیقت استصاب توسعه یقین بقاانه البته این توسعه ابداعیه مثل قاعده تجابز واقعی نیست و این توسعه در وجدان عمومی انسان ها هست احتیاج به تعبودن نداره ولو مرحوم شیخ و دیگران بعد شیخ اسرار رو تعبود دارن ما حضور این که یک که حالات روانی در انسان آه. که اون یقین به حدوث رو توسعه میده حالا این تصرف با متخیل است نه اون بحث دیگری است اون یقین به حدوث رو توسعه میده تو مرحله بقا همین که دیروز زید رو دید حیات دیروز دیروز زید رو توسعه میده برای امروز که روز شک میونه و حقیقت استصحاب بقا ماکان نیست اون هم یه تفسیر دیگری از استصحاب و این دو, دو تفسیر با هم دیگه فرم میکنه الله تعالی خواهیم گفت که از, آ... از روایت لا تنقذ یقینه به شب کدومی که در میان توسعه یقین من خوب دقت کنیم چون این نکات رو من رو موازیه نفر بودن که تو ذهن منه اگر مراده از لا تنقذ توسعه یقین باشه خوب دقیق کنیم باید این شبه جواب داده بشه توسعه یقین باشه باید دویم استعمال ای کناییه. چون ظاهرش تکریف است به عدم نقضه یقین باطنش بقاع یقینه مراد بقاع یقینه این لاتفن غزر یقین یه نحوه استعمال است مثل زیدون پسی رو اگر مراد استثاب باشه این چون آنه توجه نکرده این شبه بسیار قوی در استظهار استثاب از قاعده چون ننمشتن رو ما اینجا اشاره کردیم چون وقت تموم شده و خیلی لطیفه بناس توضیحش اینچه ها تو استثاب بدیم اونجا نمیتونم داریم وقت کم عرض بکنم اون نقطه زرافت کاری هست ما اگر استثاب رو یک مفهوم عرفی گرفتیم و در مفهوم عرفی توسعه و یقین گرفتیم که ما و ظاهر و لا تنقض در این مفهوم عرفی نداره الا به اینکه بگیم لا تنقض حالا چون دو جور در آزهرم شده به سیغه نه و به سیغه چه لا تنقذل یقین باشه چه لا تنقذل یقین باشه هر کدومش که مقدر باشه دقیق فرمودیم باید بکنیم لا تنقذ کنایه یعنی علی یقین و باقین مثل زیدون کسی ما این شبهه بسیار مهم نیست اینشالله بعد به ازن الله تعالی عرض شد. پس تا اینجا رسیدیم وجه تقدیم بعض از اصول تنزیلیه و بعض از اصول تنزیلیه فردا کلام آزیات که حکومت و مبنای تخصیص اون که امروز عرضه شده و عرض کنیم که تو نظر ما هیچ شده از این کلمات درست نیست مثلا نکته دیگه‌ای هست فردا ان شاء الله عرض و صلی الله علی محمد و آله الطاهرون